بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سید المرسلین و آله و صحبه اجمعین اما بعد اشتاو من درس از درس از سوره یوسف آیه چلو بعد از اینکه یوسف علیه السلام توجوه نصیحت میکنه با اون دو نفری که خوابی دیدی بدن و اومده دو برای تعبیر خواب نزی یوسف یوسف علیه السلام بهشون میگه یا صاحب یا سجنی ای دو رفیق من. اما احد کما فیسقی ربه خمرا اون خمر و انگور که دیدی خمری ازش میگیری و به اون از اون خمر که انگور بود چون آبشون میگرفتن تبدیل به خمرش میکردن تو دوباره به کار اولت همون شغلی که داشتی برخواهی گشت این تعبیر خواب یوسف بود به نسبت اون کسی که دید آب انگور رو میگیره خود میوه کلند در خواب دلات بر خشکامی میده چون دهن انسانو شیری میکنه، چی میخواد انگور باشه، سیب باشه یا هر میوه دیگه و به نسبت اون مزاجش اشخاصن افرادی که دور بر ما هستن. یه قاعده کلی هست در تعبیر خواب، میوه‌جات دلات بر افراد دارن، حتی حشرات، حیوانات، گاهی سگ میبینیم، گاهی گرگ میبینیم، گاهی روباه میبینیم. هر کدوم بر اساس طبیعتش افرادین دلات بر افرادی که دور بر ما هستن. گرگ مأموره سنگ و سختدل روباه انسان مکاری سگ انسان بددهنیه دهنی کینه توز خصلن شطور حالا بستگی داره مثلا شطور دارد بر راس میده کسی که بالا است حاکم وزیر سالار رهبره رهبر بزرگ قوم شطور حالا گاو میاد تفسیرش اینها قواعد کلی خابه اون چیزایی که دوره بر محمد اون جنسش دارد و نوع اشخاصی که دوره بر محمد خب این خابه بنده خدایی که خواب انگور رو دیده بود برمیگرده به همون شغلش آزاد میشه نمیدونست یوسف که الان خب قضاوت میخواد بشه داوری میخواد بشه قاضی میاد کدوم حکم ادامش صادر میشه کدوم حکم آزادیش یوسف علیه السلام اینجا فقط داره تعبیر خواب میکنه اون شخصی که دید در خواب که نان بر سرشه و پرندگان دارن از سرش میخورن به سلیب کشانده میشه این شخص در از خباز بود رئیس خباز بود یه خیانتی کرده بود کاری کرده بود یوسف از قضایش باخبر نبود این قاضی نبود که گفتم که بیاد حکم بکنه بر اینها و بدون ماجرا چیه و قضاوت بکنه کی سرش بالای دار خواهر رفت کی آزاد میشه خواب را داره تعبیر میکنه این شخص فکر میکرد آزاد میشه اصلا خب نان عدل بر خوبی داره رزق روزیه ولی که این نان خودش نخورده این نان پرنده اومده ازش خورده و ناتونسهن پرنده رو از سرش مثلا بفرض بپرونه که نیان نزیکش یا خودش اون نونه رو از سرش برداره خب اینا همه رمز و که یوسف علیه السلام داره تعبیر میکنه بر اینکه این به صلیب کشانده شده نمیتونه دست کن بده و خودش هم نمیتونه از اون نونه بخوره پرنده آن داره میان از اون نونه میخوره خب این رمز را رو با هم دیگه جمع میکنه و بعد تعبیر میکنه براش میگه خوابت این دلالت میده به صلیب کشون میشه و پرنده میاد از روی سرت میخوره یعنی کشته میشه یک اعدامی بود که یا کشتنی بود که در زندان‌های مصریان انجام میشد. اینجا بحث فرعون نیست. حالا میاد چرا بحث فرعون نیست؟ چون فرعونیان بعدن اومدن بعدان اینها. حاکمان مصر در زمان یوسف علیه السلام فرعون نبودند 1900 سال تا 1400 سال قبل از میلاد قبطی‌ها حکومت می‌کردند فرعونه نبودند فرعونها ها بعداً آمدند فرعون, فرعون یک لقب خاصی برای ها ساکنین اصلی مصر اینها پادشاهانی بودند که بر اونها از جای دیگر اومده بودند حکم می‌کردند به خاطر همین آیه 43 داریم و قال الملك انی ارا دون ملک الملك بار در سوره یوسف تکرار میشه ملک پادشاه قضى الامر فيه فتوه گرفتید اینم قضاوت قضی الامر اینم تعبیر خواب یعنی محاله که غیر از این بشه قضی الامر تموم شد رفت پیامبره وحی الهی داره برش میشه محال که تعبیرش به اشتباه بره فیه تستفتیان یک مسئله رو میرسونه به ما تعبیر خواب فتوه است. یه شخصی میاد میگه تیموم چطور بگیرم میگه دستت بزن به خاک و فلان بکنی فتوا دادی فتوا نیاز به علم داره اشتها داره فتوا نیاز به علم داره قواعدی داره ما در کتاب اصول فقه سن کتاب داریم عام خاص مطلق مقید ما این ابواب رو داریم در کتاب فقه آخرین بابی که در کتاب فقه ما میخونیم بحث باب تقلید و اجتهاد مشتهد اجتهاد میکنه وظیفه اجتهاد رو داره اینطوری نیست که مثلا بعضیا میخوان از دوش خودشون بردارن میرن ازشون میپرسن میگه تعبینم میگه خب ولکو چرت و پرته خب چون بلد نیست نه خونده و دنبالش هم نبوده میگه ولکو خواب الکیه اگر خواب الکی بود چرت و پرت بود پیامبری خدا برشون شخص میکرد شما به من میگید یک پیامبری به این علم را موهب میکرد این موهبه این استعداد را درش میگذاشت و بهش وحی میکرد که آه، این تو اینطوری حکم اینطوری قضاوت کن اینطوری تعبیر کن بعدم این خواب سبب نجاتش میشه یعنی فرهانیانم اعتقاد داشتن درباری داشتن برای خودشون برای تعبیر خواب میاد در قصه همین خود اینجا پادشاه مصر که اعوانش و دست یارانش رو جمع میکنه بیایید کمکم من این خواب رو دیدم بعد از سالیان سال میگذره ادم یک خواب دو تا خواب سه تا نهایت خب حتما باره خودش تعبیری داره مصر هم فرعون که حتما تعبیری داره چون خواب خواب طبیعی نبود گاو چاغوچله گاو لاغر اینا همه حتما باید رمزی داشته باشن و تعبیری داشته باشن فتواس فتوا در مسائل شرعی فرق میکنه در مسائل خوب فرق میکنه در مسائل شرعی من فتوا میدم بر یک مساله بعد شما میره پیش شیخ فلانی فتوا میده مفتی کسی که فتوا میده نمیتونه فتوای خودش رو الزام بکنه مثلا من بگم تو باید این کارو بکنی نکنی خلاص نمازت صحیح نیست قنوت نخوندی نمازت باطله نمیتونم الزامش بکنم که نماز جاهاده بکنه چون این شخص اجازه داره در شریعت بره از عالم دیگرم فتوا بگیره بره پیش عالم فلانی اون عالم فلانی میگه نه قنوت نخودین مشکلی نیست سجده صفه نکردی مشکلی نمازت صحیحه فتواست تو وظیفه علم البته چیزی الزام نداری مجتهد نمیتونه روی فتوی خودش کسی رو الزام بکنه اجتهاده الزام نیست یعنی حکم شرعی رو تو میدی دیگه پاسخش با خداست در خوابم همینطوره ولی بله قضیهش اش کنه میکنه رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرمایند خواب ها روی پاهای پرندن پرندگان اونطوری که تعبیر بشن میفتن یعنی پای پرنده اگه چیز روش بذاری هر لحظه احتمال داره که بیفته بحث سرعت افتادن و اون طوری که تعبیر شده میافتد هست بین امام قرطبی و علمای عصری که مثل آلبانی که این حدیثو تصحیح کردن یک اختلاف نظری هست خیلی کم اندک اختلاف نظر در توجیه حدیث و جمع بین حدیث و آیه‌ای که میاد بحثش که آیا لازمه این حدیث اینه که اگر تعبیرم اشتباه بود اون تعبیر میشه قرطبی میگه رحمه الله میگه اصلا محاله کسی تعبیر اشتباه بکنه اون همونطور رخ بده اینطوری نیست که هر کس اومد یه چیزی گفت همون بشه نه اینطوری نیست خب نیاز به علم داره اگر اون شخص اصابت بکنه با اون علمش بله اون خواب همونطور طور میشه مثلا بکر صدیق میاد راست راست میگه فلان کس خواب دیده بعد میگه اینطوری تعبیر خوابشه بعد رسول الله میگه نصفشو درست گفتی نصفش درست نگفتی آیا اون نصفش که درست نگفته میشه نه نمیشه این کی میگه امام قرطبی البانی میگه میگه که خواب درسته اگر الکی محض باشه بدون علم باشه نمیوفته ولی اگر از علم باشه هر که اشتباه باشه احتمالات درشه این احتمال هست این احتمال این دندون کسی دیده دندونش میفته من زدم. شاید دلالت بر روزی باشه، شاید دلالت بر تجارت باشه، شاید دلالت های مختلفی داشته باشه. اگر اون تعبیر یکی از اون دلالت ها رو بگیره، همون دلالت تعبیر میشه. یعنی اون خواب همون میشه. حالا این نظر Albaniه ولی خب من حالا باهات و به این قصه که اینجا داریم چون پادشاه مس خواب که میبینه تعبیر که میکنن میگن که این اذغان احلام حدیث نفس علکیه، اون خو خب علکی نمیشه. قرار بر این نیست گفتیم که اون چیزی که هر کسی مثلا تعبیر بکنه همونطور بشه نه و این استناد امام خرتبی بر این مسئله که اینطوری نیست که هر کسی هر تعبیری کرد درست در بیاد و قال للذي ظن انه ناجم منه مذكرني عند ربك یوسف علیه السلام میگه به اون کسی که گمان میبره که نجات پیدا میکنه گمان میبره ولی خب اینجا زن به معنای یقینه چون گفتیم یوسف قضی الامر و گفت یقین داشت رو تعبیر خوابش در قرانم زن زیاد و بسیار به معنی یقین میان. مثل فرمودی الله الذين يظنون انهم ملاق ربنا به اشتهانون کی یقین دارن به به اشت الهی اینجا هم همینطور ریسو علی میدونه که این شخص نجات پیدا میکنه بهش میگه نی عند ربک اذكرنی عند ربک رب اینجا معنای چیه به معنای پادشاه به معنای اون کسی که سفر پر ما در لغت عربی رب وقتی که معرف نیاد نکره بیاد دلالت بر سرپرست میده مثلا رب ال پدر بیت پدرخونه رب ال بیت خونه سرپرست خونه و در لغت فارسی هم اینجوری چیزی هست مین خدای کامپیوتر خدای فلانی خدایان زیادن به معنای رب به معنای سرپرست هرچند که در شریعت ما دیگه من شده که برده به مالک خودش بگه رب قبلا اینطوری بود به مالک خودش هم میگفتن رب رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دیگه نگیید رب بگید سید سید منینه آقای منینه فلانی خب اینجا الله داره نقل میکنه پس از شریعت قبل ما. در شریعت اونها اینطوری بوده که به سید خودشون، آقای خودشون، مالک خودشون میگفتن رب پس مرا یاد کن نز سیدت، نز مالکت، بانم پادشاه مصف فانساه الشیطان و ذکر رب به. یک حدیث از درش زعفه اینجا میگن که رسول صلی الله علیه وسلم گفته رحم الله یوسف الله رحمه کنه یوسف که اینجا به الله نسپورت این قضیه رو رو به الله نکرد اعتماد به این شخص میکنه میگه که تو مرا یاد کن اگر مثلا الله بخواهد مرا نجات میدهد به این وسیله به مشیت الهی ربطش نداد میگه به خاطر همین که فراموش کرد این در تفسیر این حرفی که دارم میزنم فانسه و شیطان و ذکر ربه اینجا شیطان میگه سبب شد که اینجا یوسف الله را فراموش بکنه و اعتماد بکنه روی این شخص میگه فللا به صف سجن بضع به خاطر همین فراموشیش چند سالی در زندان گذرون ولی خب این یکم شاید مناسب بر این سیاق آیه نباشه اون تفسیری که قوت بیشتری داره اینه که فنسه و شیطان و ذکر ربه برمیگرده به اون فردی که قرار آزاد بشه فنسه و شیطان یعنی اون فرد فراموش کرد ذکر ربه نه اینکه اینجا خدا رو فراموش کرد نه تذکر و یادآوری به سرپرست خودش مالک خودش که اونجا بهش یادآوری بکنه پراموش کرتون اینجا مثلا اونجا میگه اذکرنی عنده ربک رب کیه؟ مالکشه مرا یاد داشته باشه و اینجا هم باز میگه فرنسه و شیطان و ذکر ربه دوباره هم ربه کیه مالکشه پس مرا یاد بیار به نزد مالکات فلبس في السجن بضع سنین یوسف چند سالی در زندان گذران چون این شخص فراموش کرده بود که یاداوری بکنه به پادشاه مصر فراموش کرده بود به خاطر این فراموشی یوسف چند سالی در زندان گذران الله گذشته یعنی این حکمت الهیه که یوسف بمونه علیه السلام چند سالی در زندان از اون حکمت هایی که خودش میدونه چون قرار خوش‌سالی بشه قراره که حاصل بشه و قراره که برادرانش میان بهش سجده بکنن همه این مراحل رو الله میدونسه از قبل علم سابق و اینجا این آیات دلداری برای رسول الله صلی الله علیه و وسلم اینی که هر شر بدی خوبی میبینی به مصلحت خودته یعنی حکمی که ما میکنیم اینجا جزرندني يوسف دارزندن بمصلحة خده يوسف عليه السلام وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضن وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفطوني في الرؤيا إن كنتم للرؤيا تعبرون وقال الملك قفتم فرعونيس إن جابوا دشوا مصر من ديدم حفطا قاف شاق بقرات سمان حفطا قاف شاق يأكلهن سبع عجاف حفطا قاف لا غير أنهم مي خرًا وسبع خودرن و او خرایاباب سات هفت خوشه گندم سبز و هفت تا خشک دیدم تر و خشک حالا بالاخره بین ثروت حیوانی و اون گیاهی و کشت و کشزار با هم دیگه ربط داره اصلا حیوان بدون کشت نمیشه این ربطی هست بین این دوتا و نوع تعبیری که یوسف خواهد کرد گاو دیده بحث حیوانه بحث دامداریه و بحث کشاورزی و اونم خوشه گندم که چه باید بکنه چون باید استنتاج بکنه اینجا برداشت بکنه الان در ربط بین گاو، که از اون علافا و از اون دام میخوره و بین اون گاو و کشتار و تعبیر یوسف از این جنبشن بین این که ماجرای قرار رخ بده این دیگه کار هر کس نیست حتی اون ساحران و جادگران که در دربار پادشاه مصر بودن عاجز بودن که چطور جنب ببندم بین کشتار و بین دام داری چیه بین این دام و بین این کشت یا ایوهل ملا او افتونی ملا داره برای خودش وزرآد داره برای خودش بزرگانی داره ای بزرگان قوم بیا جمشید فتبا بدید افتونی فی رویای به من فتواه بدید چی قراره که بشه؟ این کنتم لر رویا تعبرون اگر میتونید این رؤیا و این خواب را تعبیر بکنید چون میدونید این کار کار هر کسی نیست شاید بتونن شاید نتونن قالوا و احلام و ما نحن بتاويل الاحلام بعالمین این خوابای چرت و پرت اذغاث مخلوطی از حدیث نفس از اون چیزی که در دل انسان میاد بهش فکر میزنه و اون چیزی که شیطان به انسان الهام میکنه اذغاث و احلام احلام مجرده یه خواب پریشانی یه چیزی تو دلت اومده یا شیطانی بهت الهام کرده حلمه خواب رویی نیست که بخواد تعبیر بشه که از طرف الله الهام باشه که بتونیم تعبیرش بکنیم نه علکیه و ما نحن به تعویلر اهلم و عالبی ما این های چرت وپتر نمیتونیم تعبیرش بکنیم این میخواابعلکی رو خوابایی که الهامات شیطانیه نمیتونیم تعبیرش بکنیم بله خوابهای شیطانی هست ولیکن اینجا خود اون پادشاه ممثل اصرار داره به تعبیر خواب که این خواب شتونه نیست چون این خواب رمزارره نگاه کین فرق بین خواب شیطنی. فرق بین خواب شیطانی و حدیث نفس و خوابها و الهامات الهی در چیه؟ خوابهایی که از طرف شیطانن معمولن به شکل یک داستان در میان یعنی در خواب ما مثلا ما میبینیم سوار ماشین شدیم رفتیم این کوچه این خیابون اینجا چرا قرمز بود اونجا نشستیم سر سفره خوردیم و نوشیدیم و رفتیم بلند شدیم و این یک داستانه یعنی این یک فیلمی که داستانی که داره شیطان برات گاهی شیطان میاد در خوابت برای دلتن کردنت خواب میبینی که مثلا الان بردنه بالای دار سرتو آویز کردن دارن دستاتو میبرن فلان خواب ها لکیه چون الله خواب را بنوان یک بشارت گذاشته و بنوان یک خبری از اون چیزی که قراره که بشه و برای خودش الله برای این تعبیر این خواب ها رمز و رموزی در اون خواب گذاشته که اشخاص و افراد خاصی بتونن تعبیر بکنن لازمه تعبیر خواب درست اینه که تو ضبطش بکنی یک کدی بهت بده یک رمزی بهت بده مثلا اومده در خواب یک حرف فلانی بهت زده یعنی یک تیکه کلامی بهت گفته این تیک کلامه رمزه جاهای اسمها رمزن در خواب می‌بینی مثلا بلفرض یک شخصی به اسم سعید تو نمی‌شناسی اسمش سعیده میاد تو خوابت رمز خوابت شخص نیست رمز خوابت اسمشه از سعادت میاد از خوشی میاد خواب‌ها اینطورین برای خودش کدی دارن اون خوابایی که فیلم و داستان و نمیدونم فیلمای وحشتناک به قول خودمون اونا تاتره سینماست الهامات شیطانیه بهش با ولی خب خواب خوابهایی که برای خودش رمز و نمودی دارن کدی دارن و ما میبینیم در خواب مثلا سگی ماری به ما حمله میکنه دندونیه فلان اینها برای خودش رمز و موزی دارن که هر کسی هم نمیتونه تعبیر بکنه چه کسی میتونه تعبیر بکنه اون کسی که ارتباطش با وحی الهی قوی باشه یعنی هر عالم فقی هم نمیتونه. مثلا یک شخص لغوی بیارید نمیتونه یک کسی مثلا بیارید حافظ قرآنه مجرد حفظ قرآن نمیتونه باید تسلط بر قرآن و معنای قرآن داشته باشه تا بتونه تعبیر بکنه چون مشتقات برای خودش داره کد داره برای خودش میتونه شخص کسب بکنه بره دنبالش مثلا قبلا اشاره کردم در خواب شخص میبینه که چوبی را میبره خب چوب دلات بر چی داره الله در قرآن از چوب به عنوان چی یاد میکنه به عنوان منافق میگه که مسنده چوب خشکی هم منافقی مثل چوب خشک هم چوبه تری نیستن خب چوب خشک فقط دلائد بر چی میده؟ دلائد بر منافق میده نه هر چوبی ها خب اینا رمز کده اون کسی که تسلط داره بر قرآن بر تفسیرش بر مهانه قرآن میتونه تعبیر بکنه در غیر این صورت عاجز میمونه از تعبیر کردم و تعبیرش به اشتباه میره و اون شخص محاسبه میشه چون فتواست دوبار الله اینجا در دعایه داشتیم که الله به عنوان فتوا از تعبیر خواب میکنه اگر من فتوا دادم تعبیر خوابی را اشتباه کردم بدونی که علمش داشته باشم من اونجا محاسبه میشم چون به غیر علم دادم فتوا باید با علم باشه با چه علمی؟ علم به قرآن اینو بگم دوباره تکرار میکنم لازمه تعبیر خواب تسلط بر وحی الهی خصوصا قرآن که چیزای دیگه لازمه یعنی تسلط به لغت و اینا لازمه یا به جوهایی مثلا بعض از علماء گفتن به تورات و انجیل و دیگر کتابی هم لازمه ولی که اصل کلیه تعبیر خواب رمز و رموزش در قرانه شاید بگم 90 درصد کودها در قرآن باشن که ما بتونیم ازش کمک بگیریم برای تعبیر خواب به خاطر همین که گفتم تعبیر خواب لازمه اش تسلط بر قرآن تا این ما بتونیم فتواهای درستی بدیم صلی الله علی محمد و علی محمد